643. روزها و هفته ها منتظر ماندم تا موقعیتی پیش بیاید. مدام چشم مالیدم تا برای دیدن شمس و صحبت کردن با او فرصتی پیدا کنم. با آنکه زیر یک سقف زندگی می کنیم چون من همیشه در اندرونیم کمتر به هم بر می خوریم. اما امروز صبح که داشتم توی حیات برک های را جارو میکردم کردم، یک دفعه دیدم شمس سر و پیدا شد. تنها بود، با حالتی شاد و سرحال پرسید، حالت چطور است کیمیای عزیز؟ رو را مرتب کردم، خجولانه لبخندی زدم و گفتم، خوبم. دیدم نگاه شمس جای دیگری است انگار تازه از خواب بیدار شده بود یا اینکه باز هم به سفری فراسوی این دنیا رفته و برگشته بود میدانستم این اواخر مرتب به عالم دیگر میرود و برمیگردد هر وقت از سرای خاکی دور میشد موقع برگشتن از وجناتش میشد شد فهمید مدتی در این عالم نبوده چهره حالتی غرق در فکر پیدا میکرد چشمهایش مات میماند انگار از پشت شیشه نگاه میکند. در این مدت طولانی از بس به رفتار و حرکات شمس دقت کرده ام دیگر طوری شده کوچکترین فراز و نشیب وضع روحی‌اش را سریع متوجه می‌شوم. البته این را به خودش نگفتم. شمس سرش را بلند کرد و چشمهایش را تنگ کرد و به آسمان نگاه کرد. گفت: طوفان در راه است، کیمیا. به نظرم هوا خیلی زود خراب میشود. درست بالای سرمان انگار فقط روی ما دانه‌های خاکستری برف می‌چرخیدند. اولین برف زمستان چنان نامحسوس، چنان بیخبر می‌بارید که آن لحظه تصمیم گرفتم سؤالی را که مدتها ذهنم را مشغول کرده بود از شمس بپرسم. گفتم قبلا گفته بودی هر کسی به میزان درک خودش قرآن را میخواند از آن موقع میخواستم درباره قراعت چهارم بپرسم اما فرصت نمیشد شمس آهسته به طرفم چرخید وقتی این اینطوری با دقت نگاهم میکرد دست و پایم را گم میکردم دلم آب میشد پیشانیش کمی چین افتاد لبهایش را جمع کرد دست راستش را زیر چانهش تکیه داد و مدتی همانطور ماند پرده‌ی اسراری که افکارش را پنهان می‌کرد کشیده مانده بود کاش می‌دانست در چنین لحظاتی چقدر جذاب می‌شود گفت قراعت چهارم را نمیتوان با زبان وصف کرد. بعد دیگری هست که زبان از بیانش قاصر است. به ساحت عشق که قدم بگذاری دیگر نیازی به کلمه ها نیست. خودم هم نفهمیدم که چطور شد یک دفعه گفتم کاش روزی من هم به ساحت عشق برسم. وقتی حرفی را که زده بودم به گوش خود شنیدم حس کردم گونههایم از خجالت گل انداخته. دست با چه خواستم توضیح بدهم یعنی عشق مجازی، عشق الهی برای اینکه قرآن را با معرفتی عمیقتر بخوانم. شمس سرش را برگردان احتمالا برای آن که را نبینم گفت اگر در جوهر عد باشد مطمئنم به آنجا می رسی. در قرائت چهارم مثل ماهی در جریان آب قوته می خوری. آب می رود می جوشان جوشان خروشان روان می شوی کی می نفسی امیخ کشیدم سینه مثل دم آهنگری بالا و پایین رفت فقط شمس بود که میتوانست مرا از فرت هیجان به بلاحت حد دشار کند و درونم را این طور به قلیان بیاورد چنار او که بودم هم به دختر جوانی تبدیل می شدم که همه چیز را از نو یاد میگیرد هم حس می کردم مادری دلسوزم هم مثل گل نیلوفری که آماده است در رحمش جانی بپرورد شکوفا می شدم، زن می شدم. پرسیدم، این که می گویی اگر در جوهرعت باشد یعنی چه؟ منظورت این است که اگر قسمتم باشد؟ شمس سرش را تکان داد و گفت، آنطور هم می شود گفت. گفتم، من از این قضیه تقدیر و قسمت سر در نمی آورم. حالان که چیز دیگری میخواستم بگویم. دلم می‌خواست می, خواست می از او بپرسم آیا در قسمت من تو هستی؟ اگر نیستی بهتر است بدانم و فکر و خیال بیهوده درباره‌ات نکنم. شمس گفت: نمی‌توانم بگویم تقدیر چیست. اما میتوانم بگویم چه نیست. تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده. به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند و بگوید چه کنم تقدیرم این بوده نشانه جهالت است. تقدیر همه راه نیست فقط تا سر دراهی هاست. گزرگاه مشخص است. اما انتخاب گردشها و راه‌های فرعی در دست مسافر است. پس نه بر زندگیت حاکمی و نه محکوم آنی. این را بیست و نهمین قاعده می گوید. لابد تاجواج نگاهش می‌کردم که شمس احساس کرد باید کمی بیشتر توضیح بدهد. در حالی که اعماغ چشمهای سیاهش برق میزد چنین گفت: با اجازت حکایتی تعریف می کنم. روزی زن جوانی از درویشی در باب تقدیر میپرسد. درویش میگوید: با من بیا تا با هم ببینیم تقدیر چیست. می روند و میروند تا به میدانگاهی شلوغ می رسم. میبینند مردم جمع شدهاند تا شاهد به دار آویخته شدن قاتلی باشند. درویش از زن جوان میپرسد الان این مرد را اعدام خواهند کرد. اما کدام حادثه عامل این معلول است؟ یکی قبلا به این مرد پول داده بوده. او هم رفته و سلاحی را خریده بوده. که بعدا با آن جنایت را مرتکب شده آیا سبب بهدار آویخته شدنش این است یا اینکه چون موقع ارتکاب جنایت کسی نتوانسته جلوش را بگیرد الان دارد به طرف چوبه دار میرود یا علتش این است که پس از ارتکاب جنایت نتوانسته فرار کند علتی را که باعث اعدامش می شود به نظر تو باید در احوالات پیش از جنایت جوست یا در حوادث اسنای جنایت یا وقایع پس از جنایت حرف شمس را بریدم و گفتم داری گیجم میکنی. مرد قصه به این دلیل اعدام می شود که قاتل است یعنی جنایتی وحشتناک مرتکب شده مکافات عملش را میکشد این علت است این هم معلول اعمال خیر جدایند اعمال شر جدا شمس یک دفعه صدایش را پایین آورد و طوری که انگار خسته شده باشد گفت منظورت را میفهمم اما در زندگی همه چیزها را نمی شود این طور راحت از هم جدا کرد. اگر آنطور طور که گمان میکنی سیاه و سفید، خیر و شر، آشکار و پیدا نباشد، آن وقت چه؟ یا اگر بعد معرفتی دیگری وجود داشته باشد که در آن کلمه ها اهمیتشان را کاملا از دست بدهند در آن صورت چه می شود؟ غیر ممکن است خدا از ما می خواهد در موضوع جدا کردن نیک و بد بسیار سریح باشیم. وگرنه نه نه حرامی می ماند نه حلالی اگر انسانها را از جهنم نمی ترساند و وعده بهشت نمیداد، بشریت از راه صلاح منحرف می شد و به وضعیتی فجیح گرفتار می آمد هم به بیم محتاجین هم به امید باد سردی به طرفمان وزید دانه های برف در هوا به این سو و آن سو پراکنده شدند شمس قدمی به طرفم برداشت و شالی را که دورم پیچیده بودم مرتب کرد شانه هایم را پوشان آنقدر نزدیکم بود که بویش را میشنیدم. بوی شمس مخلوطی بود از بوی چوب صندل مشک و انبر و خاک باران خورده. شمس مهربانانه نگاه هم کرد و گفت مرس های عقل و منطق ممکن است کاملا قاطع باشد. اما در عشق همه مرس ها و جدای ها محو می شود. عشق آسمانی صحبت میکرد یا عشق زمینی، شاید هم منظورش ما دو نفر بودیم. یعنی چیزی به اسم ما هم وجود داشت. شمس بیخبر از پرسش هایی که توی ذهنم میچخید حرفش را ادامه داد. گفت: درباره‌ی حلال و حرام صحبت می‌کنی. چنان آدم‌هایی پیدا می شوند که فقط از ترس جهنم یا از شوق بهشت ایمان می‌آورند. که اگر ایمان نیاورند بهتر است. کی کی را گول می‌زنند. حتی حساب نمازی را که خوانده اند میدارند. ما اما در نماز دائمی پیوسته در آرامشی. زهد و عبادت را می خواهم چه کنم. اگر دست من باشد، یک سطل آب بر و آتش جهنم را خاموش می کنم و بهشت را به آتش میکشم تا فقط و فقط عشق بماند. بقیهش یاوه است. با نگرانی گفتم مبادا این حرف ها را جای دیگر هم بزنی. آدم ها از قبل قضاوت خودشان را کردند. درست درکت نمی کنند. بیان که بفهمند چه می خواهی بگویی به تو انگ می زنند. ممکن است باعث خشم و عصبانیت دیگران بشوید. شمس لبخند زد. دستم را گرفت. گرمایش را حس می گذاشتم اسیرم کند مفتونم کند. این بار که حرف زد صدایش ملایم بود. مگر نمیگوید ما بر دلهایشان پرده افکنده و در گوشهایشان سنگینی قرار داده به گوشهای مهر شده هر چه بگویی؟ گناه می شمارند. چه کار می توانم بکنم کیمیا؟ حتی اگر بگویی عشق آن را هم بد متوجه می شوند. یک دفعه گفتم ولی تو هرچه بگویی در کام من مثل اصل شیرین است. وای خدای من زبانم را گاز گرفتم. باورم نمیشد همچو حرفی از دهانم درآمده باشد. چطور توانستم چون این حرفی بزنم؟ مگر عقل از سرم پریده بود. لابد جنی شده بودم. با دست خودم را جمع جور کردم. بیام که حتی به صورت شمس نگاه کنم شالم را سفت دور خودم پیچیدم و زیر لبی گفتم چیز دیر شده توی مطبخ کلی کار دارم من دیگر بروم در حالی که حس می کردم گونه هایم از خجالت سرخ شده در حالی که شیرینی حرف را که زده بودیم مثل شکر نوک زبانم حس می کردم و قلبم دیوانوار می تپید از حیات به طرف خانه به افتادم اما با آنکه دوان دوان از شمس دور می متوجه بودم که از آستانهای گذشتم از آن لحظه به بعد حقیقتی را که از ابتدا میدانستم قبول کردم بله من کیمیا دخترخوانده و طلبه و یافته محصر مولانا از روزی که شمس تبریزی را دیدم، سخت آشقش شدم.